<laughs> ¶¶ مسئلتونم که حل شد قرار بود سیاستمدارهای مشهور اینطور این نبود که مثل دردین بیایند یکی دو کلمه حرف بزنند بعد بروند و انگار نهید روستا به روستا دسبه به دسبه میگشتند. سیاستمدارها پیش از آمدن به این سفر در مرکز حزب کلی بحث کرده بودند با تجربه گفته بود دوستان، ما وقتی توی جلسه حزبی هستیم با همدیگه چطور صحبت می با مردم هم همونطور حرف میزنیم عین خیالمون هم نیست که مردم از حرفهامون سر در میارن یا نه؟ این کار خیلی اشتباهه چیزهایی هست که مردم میخوان درباره حزبمون بپرسن و بفهمند باید به اینها یکی یکی جواب بدیم مردم باید بدونن وقتی حکومت رو به دست گرفتیم چه کارهایی می بکنیم هم این فکر را پسند دیدن. قرار شد سخنران های حزب وقتی پشت کرسی خطابه قرار می گیرند، آنطور که بلدند و عادت کردند حرف نزنند. بلکه به سؤال مردم با زبانی آمه فهم جواب بدهند. اما این کار آنقدرها هم که به نظر می آید آسان نبود. رفتن به جایگاه سخنران و دو سه ساعت حرف زدن آسان بود. اما جواب دادن به سؤال جواب دادن به هر پرسشی که احتمالا می‌شد، کار سختی بود. نباید فکر کرد دهاتی و ساده. زیرکی روستایی از قدیم معروف بوده. یک وقتی لی سوالی می کنند که سخنران همان به بالاتر درجه خوشش میزند و آبروی حزب در آن منطقه سکه یک پول می شود. برای همین سوال را که مردم هر منطقه ممکن بود بپرسند همه را در نظر گرفتند و هیئت پنج نفره ای تشکیل دادند. اعضای هیئت عبارت بودند از یک دکتر اقتصاد، یک پروفسور حقوق، یک کارشناس امور مالی، یک کارشناس ارشد کشاورزی و یک دکتر که تخصصش را از آمریکا گرفته بود. دیگر مردم هر سوالی میکردند، این پنج آدم منور الفکر می توانستند پاسخ سختترین ها را هم با توجه به اساسنامه حزب بدهند. به همه تشکیلات حزب در شهرستان‌ها اطلاع دادند که این هیئت تبلیغی به آنجاها میاید. اما سخنران ها مثل سابق پشت کرسی خطاب سخنرانی نمیکنند بلکه با مردم حرف میزنند. اهالی تورگوتلو از این خبر خیلی عصبانی شدند. قرار هم سخنرانی بکنن هم پرسش و پاسخ باشه. مسئول حزبی تورگوتلو گفت: بگو ببینم حالا چی میشه؟ این حزب ما اختراع جدید کرده؟ خب قبلا مثل آدم می اومدن داد می‌زدن، فریاد می‌زدن، نصف حرفشون رو می‌فهمیدیم، نصفش رو نمی‌فهمیدیم. کف میزدیم زنده باد میگفتیم و تموم میشد میرفت پی کارش الان چی میشه؟ کی قراره با اونا حرف بزنه؟ چی باعث بپرسیم؟ حالا گیریم یه چیزی پرسیدیم کی حرفای اونا رو ملتفت میشه؟ کی حالیش میشه که چی گفتن؟ سریم آقا بززاز گفت تو حالا سوالای ما رو بیخیال شو. حرف حرف رو میاره اگه اونا یه وقت چیزی از ما بپرسن چه خاکی تو سرمون؟ این همه عضو حزب هست. جلو اونا به رو واسمون نمیمونه. رئیس گفت: فهمیدم، راهشو پیدا کردم. بی خودی دست بالا کردن و توی هر حرفی پریدن قدقنه. باید از قبل معلوم کنیم کی قراره با اعضای هیئت صحبت بکنه. خوبه، قبول. همه با هم گفتند خوبه، عالیه. کی داوطلب میشه؟ هر کی به خودش اطمینان داره دستش بالا ببره. رئیس که دید کسی داوطلب نمیشود. رو کرد به عثمان سلمانی و گفت عثمان وراج چرا وای تو که از صبح تا شب کارت حرف زدن خب حالا وقتش که از هنره استفاده کنی عثمان سلمانی گفت آقا تا وقتی از ما بزرگتر هستن ما نباید دم بزنیم هیچکس نمیخواست این کار را به عهده بگیرد آخر سر رئیس رو کرد به صالح عطا و گفت آقا صالح اگه یه نفر باشه که از پس این کار بر بیاد اون یه نفر توی. سالح اتار که باد به قبقب قب انداخته بود گفت یه نفری که نمیشه خوب نوری افندی هم بیاد. همانطور که در مرکز حزب هیئتی تشکیل شده بود تا بتوانند به همه سوال های دهاتی ها جواب بدهند اینجا هم سالح اتار و نوری افندی انتخاب شدند تا بتوانند چیزی از آنها بپرسند. رئیس گفت حالا خوب گوش کنین ببینین چی میگم. باید کاری کنیم جلوی حزبایی دیگه سکه پول نشیم؟ همشون میان اینجا. جلوی اونا اگه دیدین یه حرف نفهمیدین، طوری وانمود کنین که انگار از همه سر سردر میارین. طوری حرف بزنین که انگار فهمیدین. حرفای اونا رو یکم این بر اون ور بکنین. یکم بپیچونین و دوباره همون حرفا رو تحویل جمعیت بدین. هیئت قرار بود صبح روز بعد به قصب بیاید. ساله اتار و نوری افندی توی ذهنشان برنامه چیده بودند که چه سؤال هایی بکنند ساعت ده چهار اتومبیل به ایستگاه صبهٔ تورگوتلو وارد شد پنج سیاستمدار با حزبیهایی که در ایستگاه به پیشوازشان آمده بودند به ساختمان حزب رفتند چای و قهوه خوردند میخواستند پیش از نهار سخنرانی بکنند سیاستمداری که پروفسور حقوق بود گفت از اونجا که میتینگ قدغنه برای شهروندان فقط یه سخنرانی می خواهیم بکنیم. کجا مناسبه؟ بریم قهوه خونه. هم توی قهوه خانه پر آدم بود، هم بیرونش. پنج سیاستمدار مدار با روی خندان آمدند. روی صندلی های قهوه خانه نشستند. یکی از سیاستمدارها که دکتر بود گفت هموطنان، می میدونید که میتینگ قدغنه. برای همین مناسب تر دیدیم، جای اینکه بریم پشت تریبون و سخنرانی بکنیم اینطوری دوستان گپ بزنیم هرچی درتون میخواد میتونین از ما بپرسین سعی میکنیم به همه یه جواب بدیم. آنهایی که توی قهوه خانه جمع شده بودند از این حرفها خوشحال شدند. عثمان سلمانی به رئیس کمیته بخش حزب گفت: ای آقا، اصلا اونطوری نیست که گفته بودی و ترسنده بودیمون اینها هم مثل قدرمونن مثل آدمی حرف میزنن. حرفاشونو میفهمیم حالا وایستا، یه دقیقه صبر کن هنوز حرفای سیاسی رو شروع نکردن که بذار رگ سیاست مداریشون بگیره اون وقت نگاه کن، ببین از حرفاشون چیزی سردر میاری سالح اتار از جایش بلند شد اگه اجازه بدین، میخوام یه سوال بکنم گیریم اومدین سر کار اون وقت چه کارهایی میخوایین بکنین؟ سیاست به هم دیگر نگاه کرد چون از قبل پیش خودشان حساب کرده بودند که هرچو سوالی از آنها می شود جواب را آماده کرده بودند پروفسور حقوق شروع کرد به توضیح دادن پیش از هر چیز می خواهم عرض بکنم همه ملت باید این را درک بکنند که جهت تدوین قانون اساسی مطابق با معیارهای غربی و متکی بر تفکیک قوا که قادر باشد نهادهای سیاسی و اجتماعی را بر اساس آرمانهای دموکراسی به پیش ببرد تشکیل مجلس دوم و تأسیس دادگاه قانون اساسی ضروری است حزبمان که بر اساس محاسبات ابژکتیو میکوشد مانند همه احزاب به موازات نیروی فعال خود کارزاری نیرومند را تدارک ببیند معتقد است باید اعتلافی تشکیل شود تا میان قوای تقنینیه و مجریه نقش داور مرزی و طرفین را ایفا کند حزب در برنامه نشان داده است که دارای اصولی است که بر پایه آنها می توان اراده را به شکلی کامل و بی نقص کرد صالح اتار گفت اینجاش رو فهمیدیم اما یه مشکل دیگه داریم این برنامه کشت برنج چطور میشه؟ همه کسانی که در قهوه خانه نشسته بودند سراپا گوش شدند مهمترین مسئله یه قصب شده بود اگر این حزب حکومت را به دست بگیرد با کشت برنج چه میکند چون این سال در حوزه تخصصی دکتر اقتصاد قرار داشت رشته کلام را به دست گرفت الان این مسئله را به آشکارترین نحو و به شکل علمی خدمتتان توضیح می‌دهم ضرورت انکارناپذیر موازنه اقتصادی سیاسی از اینجا هم پیداست که جدیتمان در روابط با دنیای خارج با خوشبینی دور از رئالیسم سبب شده است صادراتمان امسال به یک میلیارد و دویست میلیون لیره برسد. در حالی که متوسط صادراتمان در سال 1953 ماهانه 92 میلیون دلار بود. بنابراین همه گی متوجه هستید که باید بدهی هایی که نتوانسته این ترانسفر کنیم به حالت تعلیق در بیاید. رئیس حزبی بخش به چشمهای سال حدتار نگاه کرد. سال حدتار گفت فهمیدنش که میفهمیم. یعنی اونقدر چیزیم که چیزهایی به این سادگی رو نفهمیم. دکتر اقتصاد گفت گمان می کنم وضعیت را به اندازه کافی توضیح دادم و افکار هموطنان را تنویر کردم. نوری افندی صحبت دکتر را قطع کرد. رو به جمعیت کرد و گفت: یعنی هم شهری های عزیز، آقای دکتر می‌خوام بگن که کاراتون روبه راه میشه. مسئله کشته و هم حل میشه. همه چیز صالح اتار گفت: یه چیزی مونده که نفهمیدیم. اگه اجازه میدین اونم بپرسم. یکی از سیاستمدارها که دکتر بود گفت: البته که باید بپرسیم ما پا ایم تا اینجا آمده ایم که به سؤال‌های شما جواب بدیم. واسه مشکلاتتون راه چاره پیدا کنیم و برنامه و اساسنامه حزبمون رو توضیح بدیم. نوری افندی گفت: حالا اینا رو برش کنین. به اینجا مدرسه راهنمایی ساخته میشه یا نه؟ سیاستمدار هزبی گفت: الان مسئله رو هم روشن می کنم. باید بدانیم که برای تحقق بخشیدن به دموکراسی پارلمانی نباید هیچگاه کار کرده فرهنگ را به فراموشی سپرد. باید این سخنان توماس هیدلی از متفکرین بزرگ آنگلوساکسون را چراغ راه خود قرار بدهیم. تمایل خود به خودی ارگانهای دولتی در وضعیتهای بسیار بحرانی به سوی سزاریسم نقش سیاست اجتماعی را در حفظ هماهنگی و تعادل کمرنگ می کند بنابراین همانگونه که جان بولیندا مبارز راه آزادی گفته است فقدان سیستم در داخل کشور از آنجا که پژوهش های علمی را در نظر نمی گیرد نوعی وضعیت نمادین پیدا می کند به نظرم مسئله روشن شده <تصفيق> هموطنان عزیز اگه سؤال دیگه دارین خواهش می کنم بدون رو در دربایستی مطرح بکنین نوری افندی رو کرد به دهاتیا و گفت. خودتون که فهمیدین، خب این مسئله تونم حل شد یعنی میخواد بگه مدرسه راهنمایی به جای یکی چند تا میخوام بسازن حتی دبیرستان هم میسازن سال اتار گفت سوالامون زیاد شد، خیلی ببخشید اما میخواستم بدونم قضیه قیمت توتون چطور میشه متخصص امور اقتصادی گفت الان توضیح میدم از آنجا که نظام مبادله آزاد در عمل از میان رفته، امکان فراهم نیامده که نظام بازرگانی خارجی لیبرال به مرحله اجرا در بیاید و کنترل های فیزیکی صورت بگیرد. این تئوری فقط با این فنکسیون ها میتواند سیاست پولی و مالی مربوط به موازنه داخلی را به طور کامل دهد تجمع کالای فروش نرفته و مبایعی سوبوانسیون اگر کالای ذخیره هم محاسبه شود، همه چیز به آسانی قابل فهم می شود. به این ترتیب پاسخ این سوالتان را هم به واضح ترین شکل ممکن و به صورت علمی دادم. به گمانم نکته مبهمی نمانده. صالحت تار گفت. فهمیدیم. دستتون درد نکنه. نوری افندی چیزهایی را که فهمیده بود به دهاتی توضیح داد. ده. یعنی میخواد دیگه اون کارتون هم درست میشه قیمت توتون رو زیاد میکنن اما قیمت سیمان و میختویله و بقیه چیزها رو پایین میارن دکتر اقتصاد گفت سؤال دیگه ای در میخواین موضوع دیگه ای را توضیح بدیم؟ سالح اتار گفت خیلی ممنون دیگه هیچ سؤالی نمونده مهندس کشاورزی گفت این رو هم عرض بکنم چون در این مورد نفرسیدین عرض میکنم. از گزارشی که از کنگره هایی که مؤسسه روابط بین المللی زراعی دانشگاه پرینستون تشکیل داده بود متوجه میشویم شویم که آلترناتیوها باید به خوبی در نظر گرفته شود و هزینه های متصور بر آنها هم باید به دقت محاسبه شود تا مزد که دارای کاراکتر آلی است یعنی واضحتر بگویم به طور مستقیم با گذران زندگی ارتباط دارد در کشاکش ارزیابی و ارزش محصولات استراتژیک دچار نقصان نشود گمان میکنم این نکته هم به خوبی روشن شده و جای پامی نمانده. نوری افندی رو کرد به دهاتیها. ها. خب موضوع به این سادگیه یعنی میخواد بگه راه شوسه رو میخوان از ایستگاه تا قصبه ادامه بدن. خب پس این موضوع هم حل شد. فهمیدین دیگه؟ <تصفح> صدای کف زدن بلند شد. سیاست را روی شانه هاشان بلند کردند. چون قرار بود با عجله به قصبه دیگری بروند برای نهار نماند. سوار اوتوموبیل هاشان شدند اوتوموبیل ها در میان کف زدن اهالی و شعارهای زنده از آنجا دور شدند